دوستان، وقتی به شبانی ایدال فکر میکنید، چی به فکرتون میاد؟ امروز شما با دو مرد کاملا متفاوت ملاقات خواهید کرد. اولی حساس، کمرو و مهربونه. دومی بالغ قوی و سرسخته. اسم اونا تیموتاوس و تیتوسه. و شغلشون شبانیه. عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کتاب مقدس خوش اومدین. این کلاس بررسی کل کتاب مقدسه. هر بار یک کتاب. هدف این مطالعات اینه که کمک می‌کنه شما کاربورت های سمیمانی کتاب مقدس رو یاد بگیرید تا بتونید اونا رو در زندگیتون به کار بگیرید. دعا می که روح القدس گوش های روحانی شما رو باز کنه تا بتونید کلام اون رو بشنوید و درک کنید. حالا با هم به درس امروز معلممون گوش می در این جلسه ما شروع به بررسی سه نامی پولس. که به های شبانی او معروف هستند خواهیم کرد چون این ها خطاب به مردینه نوشته شده که پولس او را به سمت شبانی و نگهبانی کلیساهایی که تاسیس کرده بود برگزیده به تیموتاوس مسئولیت داده شده بود که مراقب کلیسای افسوس باشد در این درس ما بررسی خودمون را از دو نامه‌ای که پولس به تیموتاوس نوشته شروع میکنیم و نگاهی خواهیم داشت به نامه‌ای که به مردی به نام تیتوس نوشته این آیات روند این نامه شبانی پولس رو نشون می دن. امیدوارم به زودی پیش تو بیایم اما این را می نویسم تا در صورتی که در آمدن تأخیر کردم بدانی که رفتار ما در خانواده خدا که کلیسای خدای زنده و ستون و پایه حقیقت است چگونه باید باشد هیچکس کس نمی تواند انکار کند که راز آین ما بزرگ است او به صورت انسان ظاهر شد روح القدس حقانیتش حق را ثابت نمود فرشتگان او را دیدن، مجده او در میان ملت ها اعلام شد، در جهان مردم به او ایمان آوردن و با جلال به عالم بالا روبوده شد. این آیات که در باب سوم رساله اول تیموتاوس هست، آیات کلیدی رساله اول تیموتاوس هستند وقتی که ما رسالات اول و دوم تیموتاوس و رساله تیتوس را بررسی می‌کنیم، وارد قسمت جدیدی از نامه پولس می‌شیم که به اونها رسالات شبانی می گن. همونطور که قبلا اشاره کردم به این دلیل به این رسالات رسالات شبانی میگن چون که اونها خطاب به دو مردی نوشته شدهاند که پولس اونها رو تعلیم داده و به عنوان شبان در کلیسه ها انتخاب کرده. در بررسی این سنامه شبانی پولس میخوام کاری بکنم که قبلا این کار رو نکردیم. باز هم اشاره میکنم که این کتاب ها در کتاب مقدس بر اساس تاریخ نگارشان ها قید نشده بلکه بر اساس محتویات و نوع مطالب آنها گرداوری شدن. قبلا گفتیم که کتاب مقدس تشکیل شده از یک سری کتاب های مختلف که عبارتند از کتاب های شریعت، کتاب های تاریخ، کتاب های اشعار و غیره. من کتاب ها رو همونطور که در کتاب مقدس قید شدن برای بررسی انتخاب کردم. اما وقتی که به نامه شبانی رسیدیم، میخوام کار متفاوتی بکنم. این به این دلیل که پولس رساله اول تیموتاوس و رساله تیتوس رو تقریبا همزمان نوشته و این دو نامه بسیار شبیه یکدیگر هستند و تحت شرایط بسیار سخت دومین زندانی شدنش در زندان رومیان در سامره و دومین رسالهش رو برای تیموتاوس نوشته. در دومین رساله تیموتاوس آخرین سخنان پولس رو میبینیم. این سخنان تحت چنان شرایط سنگینی نوشته شده که ما میتونیم سنگینی اون رو از خلال حرف های پولس احساس کنیم برای اینکه تأثیر اون رو بیشتر بکنیم دوست دارم که نامه دوم تیموتاوس رو در آخر بررسی بکنیم ترتیبی که ما الان دنبال خواهیم کرد به این ترتیبه اول نامه اول بعد نامه تیتوس بعد نامه کوتاهی که به فلیمون نوشته شده که در کولوسی زندگی میکرده و بعد بررسی امروز خودمون رو با نامه دوم پولس به تیموتائوس به پایان خواهیم برد این دو مردی که رسالات شبانی خطاب به اونها نوشته شده، تیموتاوس و تیتوس هستند. هر دو شبانانی بودند که پولس اونها را به طور استراتژیک در اونجا قرار داده تا های تأسیس و شبانی کنند. تیموتاوس توسط پولس به عنوان شبان کلیسای افسوس تعیین شده بود. تیتوس توسط پولس در جزیره کرت قرار گرفته بود که تأسیس و شبانی کلیسا در اونجا کار بسیار سختی بوده. وقتی ما هایی را که خطاب به تیموتاوس و تیتوس نوشته شده می‌خوانیم، با نمایی از دو شخصیت متفاوت مواجه میشی از شواهد پیداست که تیموتاوس شخصی جوان، بینهایت علاقمند و دلسوز بوده وقتی دو نامه پولس به تیموتاوس رو میخونید میتونید به آسونی شمه ای از شخصیت تیموتاوس رو ببینید پولس رو تشویق میکنه که کم رو و خجالتی نباشه بلکه شجاع باشه و در مورد مسیح صحبت کنه پولس تیموتاوس رو تشویق میکنه که کمی شراب بنوشه او میگه از این پس فقط آب ننوش بلکه کمی هم شراب بخور تا تو را تقویت کنم زیرا اغلب مریض حال هستی این تشویق نشون میده که تیموتاوس به لحاظ جسمی مردی ضعیف بوده و حالت مزاجی خوبی نداشته تیموتاوس مردی بود پر از محبت که او را به خاطر محبتش به دیگران به عنوان الگویی مطرح میکرد مردی مهربان، حساس، علاقمند و شبانی جوان که اغلب بهای سنگینی به لحاظ جسمانی برای شبانی جللش می‌پرداخت. اگرچه به بهای خیلی سنگینی هم تموم می می‌شد، غالباً در کلیسای عیسی مسیح شبانان تأثیر گذار و مسمر سمری می میبینیم. در فیلیپیان با 2 پولس در مورد الگوی کسانی که در مسیح زندگی می‌کنند با ما صحبت می‌کند. در مورد فلسفه و رنج‌های زندگی کردن در مسیح با ما صحبت می‌کند. پولس افرادی رو که در مسیح زندگی می‌کردند به عنوان الگویی برای ما راه میکنه همونطور که تیموتائوس رو به عنوان الگویی برای ما مطرح میکنه پولس مینویسه تیموتاوس رو نزد شما میفرستم چون کسی رو که مهربانتر از او باشه و بیش از او به فکر آسایش شما باشه نمیشناسم پولوس تیموتائوس رو به عنوان سرمشقی از شبانی الاغمند و مهربان معرفی میکنه این شمعه ای از شخصیت تیموتائوس است که می شود از نامه‌های پولوس متوجه شود احتمالاً کمی هم ترسو بوده و چونکه به تشویق پولوس برای شجاعت و اعلام کلام خدا نیاز داشت. شبان دیک وودوارد معلف دانشکده کوچکی کتاب مقدس رو میتونیم با تیم و تاوس مقایسه کنیم. چونکه او هم وقتی شروع به خدمت کرد بسیار خجالتی بود. خانم پیری از شبان او پرسید که آیا او به لحاظ اقلانی مشکل داره؟ او سالها در زندان خجالت اسیر بود تا اینکه خداوند او رو توسط تجربیاتی روحانی از اون زندان آزاد کرد. او روانشناسی خوند. او در روانشناسی تخصص گرفت چون که فهمید یک عقده حقارت دارم اما بعد از چندین سال مطالعه روانشناسی متوجه شد که هیچ چیز پیچیده‌ای در این مورد نیست. او فقط احساس حقارت میکرد. تحصیل روانشناسی مشکل او را برطرف نکرد. با یک موجزه روح القدس بود که او توانست بر این احساس حقارت غلبه کنه. او هم تشویق‌های مانند تیموتاوس دریافت کرد چون وقتی که شبان جوانی بود مردی که او را در خدمت هدایت میکرد، او را مانند پولس تشویق کرد. شاید شما هم مثل تیموتاوس باشید. شاید شما هم مثل تیموتاوس کمی خجالتی و کمرو باشید. تصویری که از نامه های پولس در مورد تیتوس به دست میاریم، بسیار متفاوت از تصویر تیموتاوس است. تیتوس مرد میانسالی بود که آشکارا بسیار بالغ و استوار بود. ما این را از چیزهایی که پولس به او نمیگه میفهمیم. پولس او را تشویق نمی‌کرد که باثبات باشه. یا او رو تشویق کرد که با جسارت صحبت کنه ما همینطور می میتونیم از ماموریت هایی که پولس به تیتوس میداده بفهمیم که تیتوس مرد بالغی بوده وقتی که پولس برای قرنتیان نامه نوشت و جواب و راه حل های تمام مشکلات نفسانی اونها رو داد نامه رو توسط تیتوس فرستاد این نشون میده که تیتوس باید نماینده پولس باشه و بتونه اولین نامه پولس به قرنتیان رو توضیح بده تفسیر کنه کاربردی کنه و از اون دفاع کنه آیا دلتون میخواست کسی باشید که حامل اون نامهای باشید که جواب تمام مشکلات در اون قید شده بود؟ پولس این مأموریت سنگین رو به تیتوس داد چون که احتمالاً او رو مردی بسیار خوب، خداشناس و شایسته این کار میدونسته پولس همینطور نامه دومش به قرنتیان رو هم توسط تیتوس فرستاد. قرنتیان بسیار در فساد خودشون غرق شده بودن و در این مورد زبان زده همه بودند. زربالمسلی در بین مردم رایج شده بود که وقتی کسی بی زندگی میکرد میگفتند مثل اینکه در قرنتوس زندگی میکنه وقتی که پولس تیتوس رو به عنوان نماینده خود به کلیسای قرنتوس میفرسته معلوم بود که اعتماد زیادی به او داشته پولس به لحاظ استراتژیکی تیتوس رو در جزیره کرت قرار داد جزیره کرت جای بسیار سختی برای تاسیس و شبانی کلیسا بود کرتی ها طور دیگری بدنام بودند اونها مردمانی وحشی بودند کرتی اصطلاحی بود که یونانیان برای افرادی که بسیار بیرحم بودند استفاده میکرد. زندگی کردن مانند یک کرتی به منزله زندگی کردن مانند حیوانات درنده در و وحشی بود. دروغگویی تنبلی و فقط به فکر شکم بودن این از نامه پولس به تیتوس مشخص میشه که بعضی ها ایمانداران کرتی را به این خصوصیات متهم کرده بودند مردم کرت بسیار کین توز و وحشی و سخت جوش بودن جزیره کرت مکان بسیار سختی برای تأسیس کلیسا بود. اگر پولس را به عنوان اسقف و تیتوس رو به عنوان شبان در نظر بگیرید، باید تحت تاثیر مأموریت‌هایی باشید که پولس به تیتوس میداده. مأموریت‌هایی که به او داده شده نشون میده که تیتوس بسیار قویتر مسنتر و بالغتر از تیموتاوس بوده. تیتوس احتمالا بهترین گزینه بوده که پولس برای این موقعیت شبانی میتونست انتخاب کنه. رابطه شخصی و بسیار صمیمانه بین پولس و تیموتاوس بوده. رابطه بین پولس و تیموتاوس در خدمت مانند رابطه پدر و فرزندی بوده. رابطه بین پولس و تیموتاوس در طی تی 20 قرن گذشته الگویی شده برای شبانان جوان و مسنتر. این رابطه همینطور سرمشقی بوده برای رابطه ایمانداران قدیمی با نو ایمانان هم در مورد مردان و هم در مورد زنان. بر اساس همین رابطه هست که هزینه های تحصیل خادمین جوان برای پرورش شبانان توسط خادمین مسنتر تأمین میشه. اما نظریه هم هست که برای ادامه تحصیل شبانان جوان او باید چند سالی با یک شبان مسنتر کار آزموده کار کنه و بعد از اون میتونه جهت ادامه تحصیل و آماده شدن برای خدمت به دانشگاه بره. من سالها با سه شبان ارشد کار کردم. اون سالها برای من بسیار ارزشمند بودن چون که چیزهای زیادی از اون شبانان یاد گرفتم. این نوع تعلیم در نامه دوم تیموتاوس باب دو و آیه دو برای ما به تصویر کشیده شده یاد گرفتن مرجع این آیه بسیار آسان هست کتاب دو باب دو و آیه دو در این موقعیت پولس اینطور نوشته و سخنانی را که در حضور شاهدان بسیار از من شنیده ای به کسانی بسپار که مورد اعتماد و قادر به تعلیم دیگران باشد این آیه نوع تعلیمی را به ما نشون میده که هرگز نمیتونه جایگزین دیگری برای اون باشه این نمونه تعلیم مهمترین روش برای پرورش شبانان جوان هست. کلیسه کلیساها باید از طرز تعلیم در جوامع پزشکی سرمشق بگیرن دکتر جوان از کلاس به بیمارستان میره و صدها ساعت انترنی و دستیاری رو میگذرونه و بعد از اون تیغ جراحی رو به دستش میدن و به او اجازه میدن که وارد اتاق عمل بشه و در کنار جراح قرار بگیره شاید فرض کنید که پولسخی در مدرسه تیرانوس در افسوس تعلیم میداده تیموتائوس یکی از شاگردانش بوده و از تمامی تعالیم پولس در افسوس بهره گرفته و برای او مانند یک دانشگاه بوده اما تیموتاوس در لستر در خانه خودش با پولس ملاقات کرده وقتی پولس در لستر سنگسار شد و به حال مرگ رها شد اونها بدن و او را مانند جسد یک سگ مرده به بیرون از شهر کشیدند اونها فکر میکردند که او مرده این ممکن مقدمه آشنایی تیموتاوس با پولس بوده باشه تیموتائوس احتمالاً در اون زمان پسر جوانی بود پولس بعدها چندین بار به لستره رفت وقتی پولوس سنگسار شد و به حال مرگ رها شد شاگردان دور او حلقه زدند و برای او دعا کردند. بعضی ها میگفتند او مرده و به طور معجزه آسایی از مردگان قیام کرده به هر حال او برخاست، گرد و خاک لباسهاش را رو تکون داد و دوباره به شهر بازگشت و به موعظه ادامه داد. من شجاعت پولوس رو تحسین می کنم. نمیتونم کاری جز تحسین شجاعت او بکنم و اما شجاعت پولس رو از یاد نبرید تصور کنید. این صحنه چه تأثیری در پسر جوانی مانند تیموتاوس داشته. پسر بچه‌ها معمولاً برای خودشون قهرمانانی دارند و چقدر خوبه که قهرمانان درستی برای خود انتخاب کنند. من معتقدم که وقتی تیموتائوس پولس را ملاقات کرد، وقتی که شجاعت و شخصیت او رو دید، پولس تبدیل به قهرمان او شد. پولس در سفر دوم بشارتی و در سفر سوم بشارتیشم به لستر سفر کرد. وقتی که پولس برای سومین بار به رفت، نام تیموتاوس در یادداشت‌های او قید شده. احتمالاً تیموتاوس در سومین دیدار پولس از لسره به عنوان هم خدمت او انتخاب شده. از اون به بعد تیموتاوس به عنوان عضوی از تیم خدمتی پولس انتخاب شد. شما رو تشویق می‌کنم که این نوع تعلیم رو در جماعت روحانی که عضو هستید به کار بگیرید. اگر ایماندار بالغی هستید، نو ایمانی رو انتخاب کنید و او رو شاگردسازی کنید. اگر نو ایمان هستید، دعا کنید خدا شما را به سمت ایماندار بالغی هدایت کنه که بخواد شما را تعلیم بده. این اولین، بزرگترین و بارزترین کاربرد شخصی و عملی این رسالات شبانی در زندگی من و شماست. تیموتاوس ایماندار نسل سوم بود. مادر بزرگ او ایماندار بود. مادر او ایماندار بود و خود او هم ایماندار بود. تیموتاوس مانند زندانبان فیلیپی نبود که به طور ناگهانی تبدیل شد و اولین نسل از شاگردان عیسیا گردید. نیموتاو سومین نسل از شاگردان عیسی هست. کنت اسکات که کتاب تاریخ کلیسا رو نوشته به ما میگه افرادی که از زندگی گناه آلودشان تبدیل میشن و به خدمت خداوند در میان واقعا استثنا هستند. اگر تاریخ کلیسا را مطالعه کنید و این سوال را بپرسید که چه کسانی کلیسای عیسی مسیح رو بر روی نقشه دنیا قرار دادن بسیاری از اون افراد حاصل خانواده‌های خداشناس و محیطی خداشناسانه بودند. کسانی که والدین خدا شناسی دارن، معمولا کسانی هستند که تبدیل به کارکنان حرفهای کلیسا میشن نه کسانی که از زندگی گناهالود نجات یافته و تبدیل شدهاند گاهی ما بیشتر در مورد اشخاصی میشنویم که از زندگی گناهالود نجات یافتند و دلیلش هم اینه که داستان زندگی اونها بسیار هیجان اما کسانی که منابع بزرگی برای خادمین برون مرزی هستند امروز کسانی هستند که به اونها بچه های خدمت میگیرند بچه هایی که در عرصه خدمت بزرگ شدند و والدینشون را دیدن که زندگی خودشون را وقت مسیح کردن اکثرا در این زمینه ها هست که ما خادمین امروزی خودمون رو داریم تیموتاوس همچنین شخصی بود از نسل سوم ایمانداران محققین معتقدند که پولس نامه اول تیموتاوس را بعد از آزادی از اولین زندان رومیان نوشته یادتون هست که پولس دستگیر شد و تقریبا به نوعی در حسر خانگی بود. ما در آخرین باب از کتاب اعمال این رو می‌بینیم بر اساس نوشتجات تاریخی پولس بلاخره وقتی که در حضور نرون و قیصر محاکمه شد آزاد گردید ما به اعتبار این نوشته‌ها چندان مطمئن نیستیم اما به نظر قابل قبول میاد بعد از اون پولس به اسپانیا سفر کرد پولس در نامه خودش به رومیان و اونها میگه که میخواد به اسپانیا بره و تحت حمایت رومیان قرار بگیره به این دلیل او مشتاق بود که به روم بره براساس نوشته‌های تاریخی او از اولین زندانش آزاد شد و بعد به عنوان خادم به اسپانیا رفت و بعد به افسوس بازگشت و بعد از اون به تروا رفت این مصادف با ایامی بود که نرون امپراتور دیوانه روم رو به آتش کشید و اون رو به گردن مسیحیان انداخت این زمانی بود که پولس برای دومین بار به همراه پتروس دستگیر شد هزاران نفر از مسیحیان دستگیر و به مرگ محکوم شدند. پتروس و پولس دشمنان شماره یک و شماره دوی امپراتوری روم محسوب می‌شدند تا اینکه دستگیر و شهید شدند. محققین معتقدند که پولس نامه اولش به تیموتائوس رو در فاصله دو زندان نوشته. هدف از نامه اول او به تیموتاوس همونطور که گفتیم این بود که تیموتائوس بدونه که کلیسای خدا چیه. بدونه که کلیسا زمینه و رکن اصلی حقیقت هست. زمینه اساس و رکنیه که باید حقیقت از اونجا اعلام بشه. و بدونه که کلیسا توسط خدا تراهی شده تا کار خدا رو به انجام برسونه. پولس همونطور که در نامه اولش به تیموتاوس می نویسه، می خواد بر این تاکید کنه که شخصیت مردی که قرار هست کلیسایی رو رهبری کنه، باید چگونه باشه؟ این آیات کلیدی هستند. آیات کلیدی اینها هستند. امیدوارم به زودی پیش تو بیایم، اما این را می نویسم تا در صورتی که در آمدنم تأخیر کردم. بدانی که رفتار ما در خانواده خدا که کلیسای خدای زنده و ستون و پایه‌ی حقیقت است چگونه باید باشه بسیاری بر این باورند که کلیسا پایگاهی برای نجات جان‌هاست و همیشه چیز حیرت انگیزی در خدمت کلیسا هست که اگر شما از مردم دعوت کنید اونها به دعوت شما پاسخ میدن و تبدیل میشن اما ما در واقع چیزی که از کتاب مقدس در مورد کلیسا میبینیم اینه که کلیسا اساساً جایی برای نجات جانها نیست کلیسا قصد داره که جایی برای نجات جانها باشه اما مهمتر از اون اینه که کلیسا طراحی شده تا مبنایی باشه که بر اساس اون حقیقت انجیل اعلام میشه وقتی که تعالیم این رسالات شبانی رو درک کنید متوجه نقشه خدا برای کلیسا خواهید شد لطفا براتون سوء تفاهم نشه همیشه وقتی شبانی در جلسه یک شنبه از مردم دعوت میکنه و اونها پاسخ میدن و تبدیل میشن حتما باید معجزه عجیبی اتفاق بیفته. من حدود چهار دهه هست که این رو تجربه می کنم اما اینجا پولوس چیز خیلی بهتری رو توصیف می کنه. اگر شما 500 نفر در جماعت کلیساییتون داشته باشید و هر کدوم از اونها افرادی روحانی تعلیم دیده و کامل و آماده شده باشند و یک هفته بیرون برند و هر کدام یک نفر رو نجات بدن آیا این بهتر نیست؟ این کلی که پولوس اینجا شرح میده کلیسایی که طراحی شده که ستون و مبنایی باشه که حقیقت کلام خدا از آنجا اعلام بشه پولس به کلیسای افسوس که تیمو تاوس در اونجا شبانی می کرد گفت مقدسینی که در اون کلیسا هستند باید آماده باشند تا برای خدمت خدا کار کنند در نامهاش به این شبانها پولوس پولس نقشهای رو ارائه میده که مطابق تعالیمی هست که به کلیسای افسوس داده در این نامه ها حقیقتی که پولس بر اون تاکید میکنه این هست. اگر قرار باشد کلیسا ستون و رکنی برای اعلام حقیقت باشد، کلیسا باید معیارهایی برای اعضا و معیارهایی برای رهبری تدوین بکنه. وقتی که در زمینهای غیر از فرهنگ خودتون کلیسایی تأسیس کنید، مخصوصاً در جاهایی مثل کرد که با انجیل دشمنی می‌ورزند، میفهمید که چقدر این مسئله مهم و حیاتی هست. چون که اونها قبلا کلیسایی ندیدند کلیسایی که بر اساس نقشه خدا باشه. برای اینکه کلیسا کلیسایی بر طبق معیارهای خدا باشه باید اجتماعی از افراد تبدیل شده باشه که به لحاظ روحانی تولد دوباره داشته باشند. از اونجایی که صحبت‌های ما بسیار فسیحتر از حرفهای معمولی ما هست کلیسا باید از کسانی تشکیل شده باشه که زندگیهاشون ثمره روحانی بیاره و به دنیا نشون بده که معنی پیروی عیسی مسیح بودن چیه. این مخصوصا در مورد کسانی صدق میکنه که کلیسا رو رهبری میکنن. باید معیارهای مشخص و خاصی برای رهبران کلیسا وجود داشته باشه. این هدف نامه اول پولس به تیموتاوس است. اما وقتی که اول تیموتاوس رو بررسی میکنید، حقایق دیگری رو هم خواهید دید. مثلا در آیات 12 تا شانزده از باب یک کلمه زیبایی از یک شهادت شخصی رو دارید که پولس به تیموتاوس میگه. بذارید اون رو براتون تفسیر کنم. چقدر سپاسگزار خداوندم ایسای مسیح هستم که مرا به عنوان یکی از رسولانش انتخاب کرده و به من قوت داده که وفادار باشم. هرچند قبلا دشمن نام مسیح بودم و او را مسخره می قوم او را اسیر می و به هر طریقی که می اونها رو نابود می اما خدا بر من رحم کرد چون نمی دونستم دارم می چون در اون زمان مسیح رو نمی آه که چقدر خداوند ما مهربان هست چرا که او به من نشان داد که چطور به او اعتماد کنم و از محبت ایسای مسیح پر بشم این حقیقت محضه و چقدر من مشتاقم که هر کسی این رو بدونه کلیسای مسیح به این جهان آمد تا گناهکاران رو نجات بده و من بزرگترین اونها بودم اما خدا بر من رحم کرد تا اینکه عیسی ایسای مسیح بتونه منو به عنوان مثالی برای همه نشون بده که او چقدر حتی با بدترین گناهکاران صبور بوده و مدارا کرده تا اینکه بفهمند اونها هم میتونن زندگی ابدی داشته باشن. این پاراگراف کوچک در باب یک به ما چیزی رو نشون میده که شما میتونید در سرتاسر سر این رسالات شبانی با اون مواجه بشید. به اونها گفته های صادقانه پولوس پولس رسول میگن. وقتی پولس برای این شبانها می نویسه، او بارها در اول تیموتاوس یک پانزده و چهار نه و تیتوس سه هش به اونها میگه. این سخن امین است و لایق قبول تا و این روشیه که اون نشون میده این حرف موسق هست. چیزی که منظور او هست اینه. من واقعا آمادم که چیزی بهت بگم تیمو خوب حواست رو جمع کن. تمام توجهت به من باشه. من واقعا میخوام چیز مهمی بهت بگم. وقتی پولس از این جمله استفاده میکنه ما میگیم پولس میخواد چیزی صادقانه بگه. اولین چیز صادقانه ای که پولس به تیموتاوس میگه اینه این سخن امین است و لایق قبول تام که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد که من بزرگترین آنها هستم چیزی که پولس اینجا میخواد بگه اینه که خداوند میخواد سرمشقی به گناهکاران بده گاهی بعضی از مردم فکر میکنن اونقدر گناهکارند که قابل نجات یافتن نیستم. آیا تا به حال با چنین کسی برخورد کردید که معتقد باشه چنان گناهکار وحشتناکیه که حتی خدا نمیتونه اون رو نجات بده و حتی خون مسیح نیز کفاف گناهان اونها رو نمیده. بعضی از مردم چنان فکر میکنن که حتی خدا از گناهان اونها خبر نداره. یادم یه بار خانم اومد که با من به عنوان شبانش ملاقات کنه. او به طرز وحشتناکی افسرده بود. اولین حرفی که او بعد از مدتی سکوت بر زبان آورد این بود: شبان من حتی آدم نیستم. او حتی احساس میکرد آدم نیست احساس او این بود که حتی نمیتونه جز خانواده انسانی باشه و فکر میکرد خدا نمیتونه گناهان او رو درک کنه و ببخشه این کلام صادقانه باید کلمه به کلمه به چنین کسانی گفته بشه پولس میگه گوش کنید وقتی مسیح منو نجات داد بدترین گناهکاری رو, رو روی زمین نجات داد که دنیا تا کنون به خود دیده بود چون که من پیروان عیسی مسیح رو تسلیم مرگ میکردم. من برای مسیحیان مانند آدولف آیشمن برای یهودیان در طی هولوکاست بودم. من شهر به شهر می گشتم و ایمانداران رو جمعآوری میکردم و اونها رو تسلیم زندان شکنجه و مرگ می کردم. هیچ هیچکس تا کنون گناهی بدتر از من مرتکب نشده. من نجات پیدا کردم. عیسی منو نجات داد. پولس میگه من بدترین گناهکار بودم تا اینکه بتونم به همه جا برم و به بدترین گناهکارانی که میدیدم بگم، خدا وقتی منو نجات داد در واقع بدترین گناه کار دنیا رو نجات داد پس یقیناً میتونه تو رو هم نجات بده من معتقدم که پولوز اون کلمات رو با الزامی بزرگ نوشته و تماماً معتقد بوده که اونها حقیقت محض هستند من فکر میکنم به لحاظی برای خود ما هم خوبه که باور کنیم وقتی ما نجات پیدا کردیم خدا بدترین گناهکاران رو نجات داد خود کمبینی و اقده حقارت الزاما نباید با فروتنی اشتباه گرفته بشه اگر شما عقده‌ی حقارت داشته باشید چنانکه من قبلا داشتم این به منزله فروتنی و مسکینی در روح نیست معنی فروتنی و مسکین بودن در روح این هست که بگید خدایا وقتی منو نجات دادی بدترین گناهکار روی زمین رو نجات دادی چون منو نجات دادی پس فکر کنم هیچ گناهکاری نیست که نتونی او رو نجات بدی من که بدترین گناهکار جهان بودم نجات یافتم من وقتی با ها کار میکنم واقعاً اینطور فکر میکنم. من وقتی رو می میبینم که استعداد کمتری از من در اون سن نشون میدن، با این حال همیشه میدونم که برای اونها امیدی هست. وقتی عیسی مسیح توانست منو در سالهای آخر نوجوانی نجات بده، پس میتونه هر نوجوانی رو نجات بده و زندگی هر نوجوانی رو عوض کنه. من با تمام قلبم این رو در مورد ها باور میکنم و معتقدم که پولس هم در مورد تمام گناهکاران همین احساس رو داشته. وقتی این رسالات رو مرور کنید چیز دیگه ای که باید ملاحظه کنید اولویت دعا هست. در باب دو آیات یک تا چهار پولس وقتی به تیم می میگه که کلیسا چطور باید باشه و چطور باید مردم کنار هم جمع بشن و چطور وظایف روزانهشون را رو عمل کنن، دعا رو به عنوان اولویت قرار میده. او میگه پس قبل از هر چیز تأکید میکنم که درخواستها، دعاها، شفاعت‌ها و سپاسها برای همه مردم، برای پادشاهان و همه اولیای امور به پیشگاه خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با آرامش و صلح و در کمال خدا ترسی و سرافرازی به سر برید. زیرا انجام این کار در حضور خدا نجات دهنده ما نیکو و پسندیده است او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند ملاحظه کنید وقتی کتاب مقدس میگه اول پادشاهی خدا را به تلبید در اونجا اولویت ها رو تعیین میکنه. هر کدوم از ما اولویت‌های شخصی خودمون رو داریم. در برنامه یک کلیسایی ما اولویت‌هایی داریم. بر اساس این تعالیم روشن که پولس برای تیموتاوس نوشته، اولین اولویت یک کلیسا چی باید باشه؟ پولس میگه پس تاکید میکنم برای همه مردم دعا کن. از خدا درخواست کن که بر آنان رحم کند و به سبب آنچه که برای ایشان انجام خواهد داد او را شکر کند. همینطور پولوس به ما میگه که چرا باید دعا در اولویت باشه. او میگه خدا میخواد همه انسان ها نجات پیدا کنن و به شناخت حقیقت نائل بشن. بنابراین قبل از هر چیزی من باید برای تمام انسان ها دعا کنم. تجربه من به عنوان یک شبان اینه که سختترین جلسه ای که میشه مردم رو یک جا جمع کرد جلسه دعا هست. اگر شما مثلا شب های چهارشنبه جلسه دعا داشته باشید و اگر در اون مراسم برنامه شام و جلسه مطالعه کتاب مقدس داشته باشید، جلسه تفریحی برای کودکان، تمرین سرود و پرستش، شاید بتونید دیرو رو داره هم جمع کنید. اما اگر شام و مطالعه کتاب مقدس و دیگر چیزها رو نداشته باشید و بگید برنامه من فقط یک ساعت دعا کردن هست، باید فقط منتظر بشینید که کسانی به جلستتون بیان. همونطور که من چهارشنبه به منتظر میمونم. شاید که یک خانواده بیان، شاید هم کسی نیاد. مردم نمیخوان جمع بشن و فقط دعا کنند من گاهی روزهای یکشنبه خیلی احساساتی میشم و میگم آیا نمیتونید یک ساعت با من دعا کنید عیسی هم همین رو میگفت بعد بعضی از اونها دلشون به حال من میسوزه و چند نفری میان چون دلشون به حال من میسوزه و این هم فقط برای یکی دو هفته دوام داره مردم دوست ندارن به جلسات دعا بیان با این حال پولس برای تیموتائوس مینویسه قبل از هر چیزی دعا کن این باید وظیفه کلیسا باشه این نوع خاصی از دعا هست. شما میتونید به این دعای بشارتی بگید. دعا برای همه مردم چون که خدا میخواد همه نجات پیدا کنه. کلیسا باید ستون و رکنی برای اعلام حقیقت انجیل باشه. انجیل فقط میتونه از طریق دعا منتشر بشه چون که فقط روح القدس میتونه مردم رو تبدیل کنه. فقط روح القدس میتونه شاگرد بسازه. این اولویتیه که پولس با تیموتاوس در رساله اول شبانیش در میون میذاره. این چیزی که پولس رسول میخواسته به تیم تیموتائوس درباره اولویت‌های کلیسا بگه قبل از هر چیز برای مردم دعا کن از خدا درخواست کن که بر آنان رحم کند و به سبب آنچه که برای ایشان انجام خواهد داد او را شوک کن زیرا او مشتاق است که همه مردم نجات یابند و به این حقیقت پی ببرند از شما دعوت میکنم که با درسی که امروز گرفتید بیش از هر چیز دیگری برای نجات مردم جهان دعا کنی. بشارت دادن، شاگردسازی، مراقبت از نیازمندان و فقرا کلیسا مسئولیت های زیادی داره اما بدون قوت روح القدس که توسط دعا میاد، کلیسا نخواهد تونست هیچ کدوم از رو انجام بده. دانش رویان و وفاداری کتاب مقدس میخوام شما رو تشویق کنم. اگه شما عضو موثری در کلیسای محلی برای بشارت و شاگردسازی و دعا نیستید حالا وقتیشه که از تماشا چی بودن دست بردارید و به تیم بپیوندید و قبل از جلسی آینده شهادت زندگیتون رو به کسانی بدید و به اونا بگید که چطور میتونن اونها هم با خدا در آشتی باشن. دعای اینه که این درس ها شما رو در ایمانتون تشویق و تقویت کنن. خدای جمعی تسلیات به شما قدرت و آرامش ابدی اتا فرماید. آمین.